فصل شش بخش پنجم حضرت زینب سلام الله علیه ربایی ولادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیه تبریک که غنچهی به دنیا آمد دخت فاطمه زینت بابا آمد یمن قدم او سلواتی کن ختم در بیت علی زینب کبرا آمد